این داستان دو هدیه از یک پری در روزگاران قدیم که پریامام مثل آدما روی کره زمین زندگی می پری نیک نهادی در جای دور دست سرگردون و خسته بومونده می‌گشت میگشت و با اینکه شب شده بود هنوز سرپناهی پیدا نکرده بود. در این میون چشمش به دو خونه افتاد که درست رو به هم بودند یکی زیبا و بزرگ که به مردی ثروتمند تعلق داشت و دیگری کوچیک و دلگیر که از آن یه روستایی تنگ دست بود. پری با خودش فکر کرد که اگه نزد مرد ثروتمند بره براش زحمت زیادی به وجود نمیاره و با این تصور رفت و در خونه بزرگ و زیبا رو زد. مرد ثروتمند با شنیدن صدای در، پنجره رو باز کرد و از اون بالا از غریبه پرسید که چی میخواد؟ پری جواب داد خواهش میکنم امشب منو در منزل خودتون پناه بدین. صاحب خونه سر و پای غریبه رو نگاه کرد و لباس پاره پاره اون نظرش رو جلب کرد. خبر نداشت که همین لباس پر از طلاب و جواهره. صاحب خونه سری تکون داد و گفت نمیتونم تو رو به راه بدم. اتاقهای خونه من پر از اشیای قیمتیه اگه هر کسی در بزنه و بیا تو اینجا گداخونه میشه برو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه بعد پنجره رو بست و پری خوب و نازنین و انگشت به دهن نگه داشت پری به اجبار راه خونه روبروی اونو در پیش گرفت هنوز در نزده بود که صاحب خونه اومد جلوی در و با خوشرویی پری پری سرگردونو به خونه برد صاحب خونه گفت هوا حسابی تاریک شده. دیگه نباید به راحت ادامه بدی. باید شب و اینجا بمونی. پری از خوشرویی میزبان خوشحال شد و داخل رفت. همسر صاحب به استقبالش اومد و خوشامد گفت و از اون خواست که مثل اونا در کنارشون بشینه و راحت باشه. زن میزبان گفت ما تنگ دستیم ولی هرچی داریم در طبق اخلاص میذاریم و در اختیار شما قرار میدیم. زن میزبان سیب ها رو توی تنور گذاشت همونطور که سیب ها میپختند رفت بزر و دوشید تا برای مهمون کمی شیر بیاره سفره روی زمین پهن شد و غذا رو چیدند پری پشت میز نشست و شروع کرد به خوردن غذای ساده و خوشمزه غذا از اون جهت خوشمزه تر جلوه میکرد که در صفا و آرامش خورده میشد وقتی شامشونو خوردن، زن همسرشو صدا زد و آهسته در گوشش گفت بذا مهمون در رخت خواب ما بخوابه. لابو در طول روز خیلی راه رفته، خیلی هم خسته شده. ما دوتا میریم و روی کاها میخوابیم. شوهر جواب داد با کمال میل حاضرم. همین الان میرم و موضوع رو باهاش در میون میذارم. پری اولین پیشنهادو قبول نکرد. ولی زن و شوهر آنقدر اصرار کردند که دیگه ای نداشت جز اینکه تسلیم بشه. بالاخره مرد فقیر روستایی و همسرش روی بستری از کاه خوابیدند و پری در رخت خواب اونها راحت و آسوده به خواب رفت. صبح که پری بیدار شد، دید زن صاحب صاحب‌خانه داره بهترین صبحانه ای رو که در توانشه براش آماده میکنه. پری دوباره پشت میز نشست. نور آفتاب به اتاق تابیده بود و جهره اون شاد و راضی بود پری دلش نمی با اونها خدافزی کنه بالاخره از جاش بلند شد و در حین خدافزی از مهمون نوازی اونا تشکر کرد کنار در برگشت و به اونا گفت شما با اینکه دیدین من وضع فقیرانه ای دارم با من با مهربونی رفتار کردین مایلم لطف شما رو جبران کنم و سه تا از آرزوهاتون رو برآورده کنم مرد روستایی گفت دلم میخواد تا زمانی که با همسرم با هم زنده هستیم قوی و تندرست باشیم و دیگه اینکه رزق و روزی روزمره ما فراهم بشه آرزوی دیگه ای نداریم پری پرسید دلتون نمیخواد به جای این خونه کهنه و قدیمی خونه تازهی داشته باشین با شنیدن این سؤال هر دو با صدای بلند گفتن چرا چرا اگه این سه آرزوی ما برآورده بشه دیگه در زندگی هیچی نمیخوایم پری بیدرنگ خونه قدیمی رو خونه نو و آراسته کرد و به اونها قول داد دوتا تا آرزوی دیگه برآورده کنه بعد با میزبانا خداحافظی کرد و رفت های ظهر بود که مرد ثروتمند از پنجرهی خونش دید که خونه فقیرانه و کهنه روبرو در زمانی کوتاه به خونه نو با سفالهای قرمز زیبا تبدیل شده. خوشگش زد و همینجور به خونه خیره موند. بعد زنشو صدا زد و گفت چنین چیزی چطور ممکنه؟ همین دیروز اونجا کلبه فقیرانه و کوچیک بود. حالا چطور ای به این آراستگی شده؟ عجله کن برو ببین میتونی از کارشون سر در بیاری؟ زن مرد ثروتمند راه افتاد. رفت و از مرد فقیر پرسید چطور این تغییر ناگهانی به وجود اومده؟ مرد جواب داد دیشب مسافر فقیری به خونه ما اومد و تقاضا کرد که شب و اینجا بمونه اون سر و وض خوبی نداشت ولی ما هرچی داشتیم در اختیارش گذاشتیم حتی تخت خواب اونو بهش دادیم صبح که از ما خداحافظی کرد گفت که میخواد سه تا از آرزوامونو برآورده کنه اینم یکی از این آرزوهاست. بعد از شنیدن این حرفا زن دوان دوون برگشت و هر که شنیده بود سیر تا پیاز برای همسرش تعریف کرد مرد ثروتمند افسوس خورد و به پیشونیش کوبید و گفت هر بلایی سرم بیاد حقمه گاشت که میشناختمش اون زن با اون لباسای پاره پاره اول در خونه ما رو زد و خواهش کرد بهش جا بدیم ولی من امتنا کردم همسرش گفت دیگه این حرف فایده ای نداره. سوار عصب و هر طور شده پیداش کن. از اون بخوای که ست آرزوی تو رو هم برآورده کنه. مرد ثروتمند نصیحت همسرش رو قبول کرد. سوار اسب شد و به دنبال مسافر رفت. رفت و رفت تا بالاخره پیداش کرد. بعد مهربانانه سر صحبت رو باز کرد و به این امید که مسافر رفتار نادرست اون رو ببخشه. و با لهن خاص گفت من داشتم دنبال کلید میگشتم که متوجه شدم شما رفتین دفعه بعد اگر گذرتون به اون طرف افتاد حتما به خونه ای ما بیان. منزل خودته پری گفت حتما میام بعد مرد ثروتمند از زنی که به ظاهر فقیر و بیچاره بود خواست تا ست آرزوشو برآورده کنه پری جواب داد باشه با کمال میل ولی فکر نکنم شما آرزویی داشته باشین. مرد ثروتمند جواب داد چرا نداریم؟ آرزوهایی تو دلم هستش که اگر برآورده بشه برام ثروت و خوشی به ارمقام میاره. پری گفت خب حالا به خونت برگرد سه آرزوی تو برآورده خواهد شد. مرد ثروتمند وقتی برمیگشت مدام در این فکر بود که چه آرزویی کنه بهتره. همینطور که سرگرم فکرای گوناگون بود افزار اسبشو رها کرد. اسب با جفتک زدن و بالا پایین پریدن رشته فکر و خیالشو پاره کرد. مرد به اسب ضربه زد و گفت: «هی و نارون باش. ولی انگار نه انگار. اسب چنان جفتک میزد که نزدیک بود سوار رو بر زمین پرت کنه. مرد ثروتمند به شدت عصبانی شد و فریاد زد کاشکی از شرت راحت می شدم. هنوز حرفش تموم نشده بود که اسب به زمین افتاد و مرد به این ترتیب اولین آرزوش برآورده شد چون آدم خسیسی بود تناب زین و افسار رو برید اونها را به پشت خودش آویزون کرد و پیاده راه خونهشو در پیش گرفت در راه به خودش دلداری میداد و میگفت هنوز دوتا دیگه از آرزوان باقی مونده حدود ظهر بود که مرد ثروتمند به جای پوشیده از شنهای داغ رسید آفتاب به شدت می‌تابید و اون از گرما و خستگی کلافه شده بود از طرفی زین هم بر پشتش سنگینی می کرد. با خودش گفت حتی اگر آرزو کنم تمام سروت و گنج دنیا هم مال من بشه دیگه هیچ فایده ای نداره بعد آهی کشید و گفت اگه مثل اون روستایی فقط ست آرزوی کوچیک داشتم چی میشد؟ همون روستایی که اول آرزو کرده بود یه جرعه نوشیدنی داشته باشه تا بنوشه بعد آرزو کرد تا اونجایی که داره بخوره نوشیدنی داشته باشه و آرزوی سومش هم این بود که یک بشگه پر از نوشیدنی داشته باشه وقتی هر یک از آرزواش برآورده می فکر می کرد به اونچه که می خواسته رسیده ولی بعد به نظرش می آمد که آرزواش پوچ و بی اهمیت بوده در این لحظه به یاد همسرش افتاد دور از اون هوای گرم در جای خنک در خونه و با خوشحالی زندگی میکرد و ناراحت شد که چرا اون نباید کنارش باشه. از شدت ناراحتی بدون اینکه عواقب کار رو فکر کنه فریاد زد کاش این زین سنگین از پشت من میفتاد و زنم روی اون میشست و به اون میچسبید. همین که اینو گفت زین از پشتش محو شد. و مرد متوجه شد که دومین آرزوش هم براورده شده. شده. زده و ناراحت و با عجله به طرف خونش براه افتاد تا در اتاقش راحت و با فراغ بال بشینه و در مورد سومین آرزوش فکر کنه. ولی وقتی در خونه رو باز کرد زن رو دید که گریان و نالان به زین چسبیده و نمیتونه ازش جدا بشه. رو کرد به زنش گفت خیالت راحت باشه. جای نگرانی نیست من میتونم آرزو کنم که تمام ثروتهای دنیا از آن من بشه البته فقط در صورت این آرزو برآورده میشه که تو در همین وضع باقی بمونی زن با عصبانیت جواب داد مرد مگه عقل تو از دست دادی اگه قرار همیشه به این زین چسبیده باشم ثروت به چه دردم میخوره تو این بلا رو سر من آوردی حالا باید آرزو کنی که من از شر این زن خلاص بشم مرد ثروتمند برخلاف میل باطنیش مجبور شد آرزو کنه که مشکل زنش حل بشه اون این آرزو رو کرد و بیدرنگ زن از این آزاد شد مرد ثروتمند و خودخواه از سه آرزوی خودش بهره نبرد و فقط ناراحتی عصبانیت و دردسر نصیبه شد حرفهای تند از همسرش شنید و از همه بدتر اسبش از دست داد از اون طرف مرد تنگ دست که در اون نزدیکی زندگی می کرد به خاطر دست و دلبازی و مهربونیش به خوشی و سعادت همیشگی دستیافت سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 با اصف های تنرو و جادویی به سرزمین های ناشناختهقصه های دیو و غول و پری رشادت های, های قصهها همه و همه و همه, همه, و همه در کانال تگرامی هزار افسان داستان های افسانهای صوتی ادساین مهران دوستی